اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در استعازه بعد از حمزه حرف عین اومده خیلیا صفات حرف حمزه و صفات حرف عین رو با هم قاطی میکنن ببینید توضیح کلی براتون بدم شما سه حالت رو در نظر داشته باشید یکی شدت یکی توسط یکی رخوت رخوت میشه آ توسط میشه عه عه عه. شدت میشه ا، ا. خوب شما باید صفت شدت رو بدید به همزه اون وسطیه که میگیم توسط یعنی وسط این دو دوتاستیگه وسط اون شلی و وسط اون شدته مال حرف عینه خوب اون رخوط هم فعلا باش کاری نداریم چون مثلا صفت همزه و عین نیستش پس اینجا میگیم ا عو ا عو نخونید ععو هر دوتا رو یکی بکنید یا اینکه مثلا بخونید او هر دوتا رو همزه بکن. نه اولی شدت داره دومی توسط ا عو پس نخونید او؟ اون میشه اون شلیه. یعنی اون حالت سوم که گفتم حرف عین وسط این دوتاست. پس شما باید برای حرف عین اون صفت توسط رو رعایت بکنید. اعوضو. خب سه تا نکته ارز بکنم. نکته اول. اگر زمه ای دی دیدید که اینجا روی عین قرار داره. اگر زمه ای دی دیدید بعدش حرف و بود. دو. اگر فتحهی دیدید بعدش الف بود سه اگر کسرهی دیدید بعدش یا بود شما باید به اندازه دو حرکت کشش بدید حتما باید به اندازه دو حرکت بکشید میخونیم اعو, اعو. دیگه نمیخونم اعوزو میخونم اعوزو میکشم متوجه شدید به اینا میگن الف واف یا احمدی که باید به اندازه دو حرکت بکشید حتما نباید کمتر باشه خب الان اهمیت مسئله رو براتون توضیح میدم میخونیم اعوذ بالله زال نوک زبان دندانهای سنایای بالا همراه صدای زنبوری ذو زو. زو به این صورت نازوکه خب اون صدای زنبوری نباشه میشه سه سه نقطه که اشتباه یعنی وقتی انگشت رو میذاری رو حلقتون باید ارتعاش وجود داشته باشه. لرزش وجود داشته باشه. اون وقت حرف زال ادا شده. خب نقطه. زال یه زمه بالاش داره. آیا بعد از اون زمه واو اومده؟ خیر. پس کشش نمیدیم. ببیندید را... به همین راحتی. میخونیم اعوذو دیگه نمیخونیم اعوذو بالله زال رو کشش نمیدیم زال زمه بالایشی حرکته چون گفتم بعدش واب نیومده بالله لفظ جلاله الله ما قبلش کسر بیاد نازکه که الان کسر اومده قبلش باه کسر اومد دیگه نازکه و غیر کسره یعنی اگر زمه و بیاد درشت ادا میشه و هم میخوندم واللهی اینجا میخونم بلهی، واللهی، بلهی، پس اینجا نازکه. اگر اون فقط در این حالت ها، فقط در این حالت شما نازک ادا میکنید. در غیر این حالت میشه درشت. واللهی، بلهی. خب، ها لفظ جلاله کسره داره. آیا بعد از کسره یا اومده خیر؟ پس دوباره یه حرکت باللهی مینا سری رد میکنی متوجه شدید اهمیت مسئله رو اینجا باید درک بکنیم ما مین شیطان الرجیم خب نون رو اینجا وصل میکنیم به شین الشیطان شین الشیطان تفشی داره تفشی صدای زوزه باد خوب هوا از شوشا خارج میشه در فضای دهان میپیچه میناش ش, ش به این صورت خب اگر تفشی وجود نداشته باشه اینجور تلفظ میشه مینش شی شی شش، شش، شش. این درسته مینش شی شی خب خیلی ها میخونن؟, میخونن مینش شی شی نه حالت کسری نباید به خودش بگیره فته داره حرف شین و بعضیا یا رو تکون میدن میخونن شیطان شیطان نداریم شیطان ساکنه ساکن اینجا یا نباید تکون بخوره فقط چند حرف هستش که در حالت سکون تکون میخورن که قاف تای دستدار با جیم دال قطب جد بهشون میدیم قایده قلقره الله در طول تدریسمون که الله کل قرآن رو میخوایم تدریس بکنیم آیه به آیه توضیح میدم تمام این موارد رو توضیح میدم ولی اینجا انایت داشته باشید که یا تکون نمیخوره شیطا این صورت شیطا شیطا نه. شیطا اشتماس شیطانی راجیم خب حرف قا اینجا درشت هستش برای درشت خوندنش شما ریشه زبان رو بیارید سمت کام بالا بیارید سمت کام بالا شیطا طا. صفت اطباق هم داره که زبان منطبق میشه به مثلا کام بالا بعد این نکته رو ارز بکنم در مورد حرف تا حرف تا به هیچ وجه نباید هوا باهاش خارج بشه دیگه نخونی شه تا تا وقتی هوا خارج کردید صفت حرف تا دو نقطه رو بهش دادی تا تا اجتماع تا بدونه خروج هوا نباید به صلاح پنچری داشته باشه شیطا نداریم شیطا نون رو وصل میکنیم به را الرجیم را الرجیم درشت هستش و الفلامش هست میشه خب چرا درشته؟ این نکتر فعلا در نظر داشته باشید را اگر زیرش کسره باشه نازکه؟ قیره اصلا کسره یعنی اگر فتحه و زمه بیاد، درشته مثلا میگیم راحمن اینجا میگیم راحیم درشته درسته حالا اگر را کسره داشته باشه مثلا در قرآن داریم که خداوند میفرماید ریجل ریجل وقت نازکه چرا؟ چون کسره داره ولی اینجا است شیطان یا راجیم درشته را دیگه را نخونید را درشت خیلی هم باید درشت بکنید بعد را اینجا تکریر داره این یعنی در مخرج خودش به صورت یک ویبره ریز تکرار میشه ر ر به این صورت دیگه نخون را راجیم اون تکریر نباید درشت باشه ریز ویبره ریزه را جیم جیم اینجا نباید دخالت دندون وجود داشته باشه دیگه نخور رژیم، رزیم رزیم نه راجیم با بهاسطلا سقف دهان باید تلفظ بشه حرف جیم و میم آخرم تکون نمیخوره وقف میکنی راجیم دیگه نخو راجیم این اشتباهست راجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به این صورت در مورد لفظ جلاله الله این نکته رو یادم رفت که حتما باید صفت توسط حرف لام مشدد رو رعایت بکنین بالله پس نخوین بالله شدت ندید یا خیلی با رخوتم نخوین که حق تشدید ادا نشه بخوین بالله. بالله انقدر کافیه بالله همین کافیه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.